اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بحث مالکیت فکری جلسه دهم در رابطه با ادله موافقین با مالکیت فکری و معنوی و حقوق ناشی از او ادله متعددی رو از موافقین با این مالکیت بیان کردیم یکی از عدله دیگر که مطرح شده است عبارت است از مساله مرسله که در فقه اهل سنت ترف شده است که علاوه بر این اصطلاح مساله مرسله گاهی موقعا بهش استصلاح هم میگویند و گاهی هم بهش میگن استدلال خود مساله مرسله از دو کلمه مسلحت و ارسال تشکیل شده حالا معنای مسلحت و ارسال چیست علما تعاریف مختلفی در این رابطه کردهاند اما اینکه واقعا مسالح مرسله همان استصلاح است ظاهرا این چنین نیست استصلاح یعنی حکمی را بنای بر مسالح مرسله بگذارند و حکمی صادر بشه بناور مسلحت مرسله نه اینکه استصلاح خودش مسلحت مرسله باشه استدلالا به واسطه مصلحت مرسله به وجود میاد نه اینکه مسلحت مرسله عین استدلال باشد به هر جهت تعاریف بسیار مختلف است و جامعی بین همه اینها نمیشه پیدا کرد اون چه به طور خلاصه میشود گفت این است که اون اصلی که جرد میکنه منفعت را و دفت میکنه مذره را یعنی نسبت به مقاصد خلق و صلاح خلق بر اینکه مقاصدشون تحصیل بشود اگر ما مسلحت حفظ میکنه مقصود شرع رو در نظر بگیریم این مسئله یه موجب به دست آمدن مقصود شرعی بشود میشه مسلحت مرسله که گفتن پنج چون اون شاره اراده کرده است. که دین مردم، نفس مردم، عقل مردم، نسل مردم و مال مردم محفوظ بماند بذاره هر چیزی که متر زمین این امور پنجگانه باشه این مسلحته و هر که باعث تفویت این اصول پنجگانه بشه این مفسده است و دفع او میشه بر مسلحت به هر جهت مساله مرسل میگم سه قسمه، بعضایش ضروریه، بعضایش حاجیه یعنی چیزایی که مورد احتیاجه و رو ضرورتی به نیست، بعضایش هم تحسینیه که جنبه تزیین و و تحسین دارد باعث تیسیر امور میشود اما در رابطه با اینکه آیا حجت هست این قاعده یا نه در حجیتش اختلاف شده است مالک ابن نهنس و احمد ابن نهنبل اینها حجت می دانند شافعی و تابعینش حجت نمی دانند که جز شافعینه تفصیل قائل است و در نتیجه نمی شود یک نظر جامعی رو به علمای اهل سنت نسبت داد و برای اسپیات حجتشم به عدل مختلفی تمسک کردند به عقل و به سیره صحابه و به حدیث لازرر و این قاعده رو خواستند بگن حجت است و میشود به او تمسک کرد کب این قاعده مساله مرسله که در فقه اهل تسنن وارد شده است چه مثبتینشون، چه نافینشون هر کدوم دلیل هایی برای خودشون آوردن اونایی که نافی استصلاحند آنها هم برای خودشون عدلهی آوردن و نفی کردن حجیت این قاعده را که مفصل در کتبونه ها مورد بررسی قرار گرفته است اون چی که ما می توانیم بگوییم در رابطه به این قاعده به عنوان یک قاعده اصولی این است که راه تشخیص مساله منحصر به عقل است یا شاره خودش تصریح می که اون می شود سنت یا عقل درک می میشه زیرمجموعه زیر مجموعه عقل لذا اگر عقل بتواند مسلحت یک چیزی را به تمامه و کامل درک بکنه که اون مسلحت منچه اثر می شود برای اینکه که از طرف شارع حکم شرعی مطابقه با او جعل بشود خب این حجت است خب اما وقتی میگیم مسلحت مرسل حجته نه اینکه که در مقابل عقل یه دلیل مستقل است همون مستاق و حکم عقل می شود از همون زیر مجموعه دلیل عقل است دلیل دیگر نیست و اگر عقل نتوانه کامل کن اتراک مسلحت بکنه به صورت کامل یعنی درک میکنه چیزی مسلحت دارد اما احتمال میدهد مزاهمی برای این مسلحت باشه که مانع از جعل حکمه یا احتمال میده این مسلحت فاقد بعضی از شرایط جعل باشه در نتیجه نمی تواند ادراک کاملی نسبت به این مسلحت داشته باشه حجیت این مسلحت مرسله دلیلی ندارد لذا ما دلیل نداریم که اثبات کنیم که عقل اگر چیزی رو تشخیص داد مسلحت داره ولو احتمال مانع میده ولو احتمال فقد شرط میده این حکم عقلی حجت است. چرا؟ چون گفتیم حجیت چنین ادراکی از طرف عقل که ادراک ناقصه ذاتی نیست احتیاج به جعل داره و از راه عدلن چیزی به دست نمیاد در نتیجه شک در در حجیت است که ما یقین کنیم به عدم حجیت چرا؟ چون قوام حجیت به علم است همین که علم نبود پس حجت نیست که در اصول مورد استدلال قرار گرفته است در نتیجه شیعه قائل به مسالح مرسله نیستند مگر در یک مورد اونجایی که این مسلحت ادراکش برگرده به عقل اولا و ثانیا به نهو جذم باشه و ثالثا ما احتمال مزاحم یا فقد شرط ندهیم در نتیجه میشه حكم عقلی پس مساله مرسله فقط در همین صورت حجته که اونم مصناقیست برای حکم عقل چیزی در مقابل حکم عقل نیست خب چه ربطی به بحث مالکیت فرهنگی فکری دارد؟ میگن آقا شارع مقدس مسلحت هایی دارد که احکامشو بر اساس این مساله جعل می کند. حالا اگر نسبت به یه موضوعی دلیل مشخصی از طرف دین در حجیت یا عدم حجیت چیزی به دست ما نرسید خب گفتن مشتهد اگر در این مسئله بتون از راه قیاس حکمی را ثابت کند که خب ثابت کند و الا به کمک مصالح مرسله می شود بر طبق او حکم شرعی جاری کرد. پس بنابراین در رابطه با مسئله مالکیت وکری میتونیم بگیم این یک مسلحت عمومی دارد شاره که اثبات نفیان که در این مورد ما دلیلی پیدا نکردیم که اظهار نظر بکند اما میدانیم و مجتهد درک میکند که یک مسلحت عمومی وجود داره که به جامعه انسانی برمیگرده و اون مسلحت ارزش های فکریست که در تمام زندگی ما و شؤون او موثر و اثر دارد لذا این یکی از حقوق الهی به شمار میاد که فایده عام می دارد و دارای مسلحتی است در دین در نتیجه حکم به جواز بر او بار میشود و با این مسلحت مرسله ادالت برقرار میگرده و حق به حقدار بیرسد در نتیجه پدیده های فکری آن این اینها از اموری هستند که جنبه مادیت و ملکیت دارند و اون کسی که مالک این فکر و اثر هنری و فکری هست حقوقی نسبت به این شی پیدا می کند خب البته از اون جهت که ما گفتیم که این قاعده مورد قبول نیست به عنوان دلی در مقابل ادله اربعه معروفه مگر در یه مورد که مثلاق عقل حساب می شود در نتیجه مساله مرسله چون حجت نیست از این راه نمیتونیم ثابت بکنیم حقوق مالکیت معنوی و فکری را بلیزا می خود شافعی اصن تصریح کرده گفته استنباطاتی که بر مبنای استصلاح بخواد باشه این مانند استحسان است مطابعت از هوای نفس حساب می شود و دلیل شرعی نیست و حجت نمی تواند باشد و مطابعت از هوای نفس اصلا حرام است خود شافعی هم اصلا مسند موصله را قبول ندارد یکی از ادله دیگری که برای اثبات حقوق مالکیت معنوی به او تمسک جسته شده است عبارت است از صد ذرایع و فتح ذرایع این هم یکی از قواعد و اصولی است که در میان اهل سنت رائجه و اونها تمسک به این قاعده کرده‌اند خود ذرایع که جمع ذریعه هست یه معنای لغوی دارد یعنی وسیله اون وسیله که با او ما به شیء دیگر میرسیم در اصطلاح علم اصول گفتند توسل جستن و وسیله پیدا کردن به چیزی که مسلحت دارد که این وسیله بشود برای رسیدن به یک ای و تعاریف مختلفی شده است که این صد زرایه چه تعریفی دارد تعاریف مختلف و متعدد است بعضی ها خیلی عام بعضی ها خیلی خاص ولی اون که به عنوان جمع میشه بیان کرد این است که صد ذریعه زریعه یعنی اون ای که منجر بشود به یکی از احکام خمسه حالا یخواد منجره به مصالح بشود، منجر به مفاسد بشود یا نه منجره به چیزی بشود که نه مسلحت دارد و نه مفزده خب، ذراعی را امومدن اقصامی کردن، گفتن ذراعی چهار قسم است اون وسائلی که ما رو به مفزده میرساند، مثل شرب مسکر قسم دو بونگن، است که ما رو موضوع برای امور است. اما فائل این کار قصد مفسده از اون کار دارد مثل کسی که عقد نکاح رو میبنده ولی هدفش تحلیله یا کسی از بی استفاده میکنه ولی قصد ربا داره قسم ثبوت زرایه است که برای امور مباحث و قصد مفسده از اون ندارن اما غالبا به مفسده منجر شود مانند سب به الهی مشرکین اونایی کسی اونا سب کنه الهشونه اونا خدا رو سب میکنن یا مثلا زنی که شوهرش مرده در زمان ادست خودش رو زینت بکند ولو قصدش هم فساد نیست ولی بالاخره منجر به فساد میشود و باعث جلب مردم و نامحرم میشود اسم چهار وسائلی که برای عمر مباه جعج شده اما گاهیم قا منجر به مفسده میشود در حالی که مسلحتش رجحان دارد نسبت به مفسدهش مانند نگاه کردن به زنی که مورد خاستگاری واقع میشود یا کلمه حقی که در نزل سلطان جائر گفته میشود خب در رابطه با فتح زرایع و صد زرایع چه حکمی دارد؟ علمای اهل سنت خودشون با هم اختلاف دارن اثباتن و نفین بعضی ادله برای اثباتش آوردن هم از آیات قرآن هم از احادیث و هم از راه عقل و بین وسیله ثابت کردن که صد ذرایع وسیله است برای اثبات حکم شرعی چیزی اون چیزی که در فقه و اصول شیعه مطرحه و مورد بحث است در قالب مقدمه واجب واجب است یا نه مقدمه حرام حرام است یا نه تحت می شود که به همین اصف هم در کتاب های شیعه آمده است خب اما آیا واقعا ملازمه وجود داره بین شیع و مقدمه او آیا ملازمه وجود داره بین حرمتی شیع با مقدمه او بین علما اختلاف است اونی که محققین او رو قبول کرده در مبحث مقدمه واجب که در ضمن او مقدمه حرام مقدمه مستحب مقدمه مکروه هم مورد بحث قرار میگیرد این است که نه عمدتا و مشهور فوقهایش اینطور طور که ملازمه ای بین مقدمه و ظلم مقدمه در حکم شرعی نیست اگرچه که مقدمه واجب واجب است عقدن اما آیا مقدمه واجب شرعا هم واجب است یا نه اکثرا این رو قبول نکردهاند و استدلالم هم من دلیل نداره که مقدمه شی واجب بشود چرا من دلیلش این است که اصلا جعل احکام برای این است که انگیزه ای ایجاد بشه بر تاره طرف،, طرف در موارد واجب کاریو انجام بده در حرام ترک بکنه خب امر مولوی حالا چه نفسی باشه چه غیری مولا هدفش تحریک مکلفه که معمورون به انجام بده نهی یه هدفش این است که معمورون به ترک بشه بر. یعنی یک انگیزه ای در نفسش ایجاد بشه برای انجام مامورون به ترک من میونم در جایی که طرف خودش انگیز و دایی ندار خب حالا اگر مولا بخواد امر کند به مقدمه اگر امر به مقدمه یا نهی از ظلم مقدمه خودش دایی ایجاد می کند برای انجام مقدمه و ترک مقدمه لذا امر به مقدمه میشه لقف اثری دیگه ندارد. او دیگه خودی انگیزه نمیکند. میشه تحصیل حاصل اگر خود امر به ظلم مقدمه یا نهی از ظلم مقدمه ایجاد انگیزه نمیکند و تحریک نمیکنه مکلف رو. چون میدانیم که او تمرد میکنه، واسه نمیخواد رو انجام بده. امر به مقدمه یا نهی از مقدمه هیچ اثری ندارد و اصلا دایی و نمیتونه ایجاد بکند در نتیجه عقل است که میگوید مقدمه بر باید انجام بشود و با گفتن حکم عقل دیگه امر شرعی نه او تحصیل حاصل است و لازم نیست حد اکثر می ارشاد و تاکید اما امر مولدی نخواهد بود تو مقدمه مستحب هم همین حرفو میزنیم در مقدمات مکروه هم همین حرف زده میشود در نتیجه اگر ما میبینیم در لسان شاره نسبت به بعضی از امور از مقدمه شی نهی شده این ارشاد حکم عقل است تأکید اوست نه اینکه احکام تأسیسی باشد لذا گفتن عوامر غیریه و نواهی غیریه مثلا نه مستلزم ثوابه و نه مستلزم عقاب است و این حرف هم حرف منطقی است و مبتنیه بر همون مبنایی بود که توضیح میدن علمای اصول پس معنی ندارد که ما امر مولوی یا مولوی نسبت به مقدمه داشته باشیم این وجودش که عدم است چون نه موجب سبابه است نه موجب عقاب است ازا همه اتفاق نظر دارن سباب و اقاب مال ظلم مقدمه است، نه مال مقدمه کسی که نماز نمی یه اقاب بیشتر نداره. اما نمیگن چرا تصطر نکردی استقبال نکردی بوزون نگرفتی و الى آخر بنابراین اونی که می شود گفت این است که در رابطه با صد ذرایع و فتح از این صد ذرایع می شود معتبر باشد جواب این است که خیر این یا از سقریات سنت است یا از سقریات عقل چرا؟ به خاطر این که اگر ما بخوایم حکم مقدمه رو کنیم یا از راه عقل کش میکنیم که قائل به مرازم است که هر چیزی واجب شد مقدمه اشم واجب می شود یعنی عقل حکم میکنه به وجود ملازمه بین حکمی شیع و مقدمش و اگر ظلم مقدمه واجب شد ما این پیلون پس مقدمش هم واجب است پس میجه از سورایات عقل یک حکم مستقلی نیست این صد زرایه و فتح زرایه در مقابل عدلی چارگانه کتاب و سنت و اجماع اگر ما از طریق ملازمه یه استفاده کنیم حکم مقدمه رو یعنی دلالت التزامی احکام بگیم لفظی که دلالت میکنه بر وجوب ظلم مقدمه مثل مثل سالات لازمش این هست که مقدمهش هم باید واجب باشه اگر از این باب باشه در نتیجه وجوب مقدمه میشه مدلول سنت پس این مسئله سغرایات دلیل سنت هست پس باز هم در مقابل عدل اربعه این فتح زرایه و همچنین صد زرایه این دلیل مستقلی حساب نمی شود اگرم دلیلی باشد ارشاد به حکم اغلب که عقل در وجوب ظلم مقدمه وجوب مقدمه را هم قائل است و حکم به وجوب میکند در نتیجه خود صد زرایه و فتح زرایه آن این دلیل مستقلی نیست البته در رابطه با حرام ما دلیلی نداریم که مقدمه حرام حرام باشد مگر در یه مورد مقدمه هایی که جنبه سببیت داشته باشند که انجام مقدمه ملازمت داره با انجام ظلم مقدمه بله از باب سببیت اگر چیزی ظلم مقدمه حرام بود مقدمه هم حرام است به حکم عقل نه به حکم شرع اما از اون طرف اگر مقدمهای نسبت به مقدمه حرام جنبه سببیت نداشته باشد. نه این مقدمه حرام حرام نیست. نه و نه اقلن. پس پنابراین اونی که در فقه و اصول شیعه عنوان دلیل مطرح می شود چیزی به نام صد ذرایع و فتح ذرایع در مقابل ادله اربعه ما نداریم. خب تطبیقش با مسئله ما چی است؟ قد یعنی جلوگیری کردن ذرایع جمع ذریعه یعنی وسیله خب میگن آقا هر عملی که منجر به یک مفسده ای بشود باید جلویش را گرفت مقدمه حرام حرام است هم که فتح ذرایع داریم که مقدمه واجب میگن واجب است سد ذرایع این میشود که مقدمه حرام حرام است خب، گفتن این ملاد و مبنا می شود برای اینکه بگیم حقوق مالکیت فکری میشه مشروع خب، حالا چرا اینجا توضیحی وارد نشده که از راه این قاعده چگونه مشروعیت این حقوق دلالت می کند مگر بخوایم اینطور توجیه کنیم و بگیم که اگر کسی حقوق دارندگان آثار فکری هنری و خلاصه علمی رو رعایت نکنند و حق او رو رعایت نکنند این باعث میشه شود که مفسده در جامعه ایجاد بشود اون چه مفسده است و این این است که چیزی را که ملک و مال دیگری است حریم برای او قائل نباشند ارزش براش قائل نباشند و در نتیجه بدون اذن مالک او در او تصرف کنند. این کار مفسد دار است خب مقدمه حرام حرام است در نتیجه ازن نگرفتن از مالک آثار فکری و برای اشتراط او یا اعلام او به اینکه من بدون ازن حاضر نیستم چاپ این کتاب تکثیر این اثر رو یکسان دیگه واگذار گذار بکنم این میشود حرام در نتیجه این حق برای مالک اثر فکری و فرهنگی ثابت می شود که او در مقابل اذنی که میدهد یک مالی را از دیگران تقاضا بکند چیزی را به عنوان مقابل با زحمت که کشیده بگیرد تا ن انتشار و تکثیر و اخذ و اقتباس بدهد در نتیجه این صد زرایه اینگونه پیاده می شود که رعایت نکردن حق مالک فکری و فرهنگی این حرام است لذا بدون اذن او کاری کردن این هم میشه حرام چون مقدمه حرام حرام است خب اما آیا واقعا این چنین هست یا نه ما گفتیم اصل خود قاعده اصلا مورد قبول نیست یعنی مخدوش است و نمیشه او رو قبول کنین چرا به خاطر اینکه اولا وجوب و حرمت مقدمه یک وجوب غیریست نه نفسی و سانیان بر او ثواب و عقابی مترتب نیست در نتیجه حکم شرعی به او تعلق نمیگیره آنچه چه که هست حکم عقلی است بله وجوب مقدمه واجب واجب است در مورد واجب است اما در مورد حرام حتی چنون حکم عقلیه ما نداریم که مقدمه حرام حرام باشه امکان داره کسی مقدمه حرام را انجام بده ولی حرام را انجام ندهد خب این کار حرامی نکرده کار مبغوز و انجام نداده است مثلا کسی زرف شرابی رو بلند می‌کند، بر میدارد یا میره شرابی میخره که بخوره ولی نمی‌خورد. از دستش میفته میشکنه به کسی از دست اون میرو باید یا با خودش منصرف میشه اصلا و توبه میکند اون که کار حرامی نکرده است مگر اون مقدماتی که جنبه سببیت داشته باشند لذا در اینجا نه ما دلیل نداریم که مقدم حرام حرام باشد اصل قاعده حجت نیست اولا هم بر این مورد ما تطبیق واضحی نیست مقدم و مقدمه دو تا عمل باید باشند خب در اینجا حرام اصلی چیست تزیع حقوق دیگران باید ثابت بشه اول این آقا حقی دارد یا نه چیزی که مشکوک است آیا حق حساب می شود یا نه آیا حق در میو وجود دارد یا نه با خود صد ذرایع نمی اثبات حق کرد میشه شود تمسک به آم در شبهه مستاقیه به این قلطه و باطله این میشود دور چون اجرای این قاعده متوقف بر این است که این تزیه حق حرام است اجازه نگرفتن از ماله تزیه حق حساب میشود پس این کار حرام است من روش که اون آقا پس حق دارد در حالی که ما تازه با کمک قاعده صد دزره می اثبات حق بکنیم و از طرفی جریان قاعده متوقف بر این است که قبل از اینکه این مقدمه حرام باشد یه زیر مقدمه حرامی داشته باشیم و تطبیق اون ظلم مقدمه حرام بر بحث ما حاضر اول و دعبا پس بنابراین هم در کبرای این خدشه است این قاده حجت نیست هم در صغرایش خدشه است که ما در اینجا دوشین نداریم به عنوان ظلم مقدمه و مقدمه که قبلا ثابت شده باشد که این ظلم مقدمه است و دیگری مقدمه اوست یعنی دو دوتا که ثابت شده و ظلم مقدمه حرام است و این مقدمه مقدمه او حساب می شود و چون این هنوز ثابت نشده پس به کمک این قاعده هم نمیتونیم اثبات کنیم حقوق و مزایای مالکیت فکری و معنوی را صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین